حکایت پادشاهی با غلامی عجمی در کشتی نشست و غلام دیگر دریا ندیده بود و مهنت کشتی نیازموده. گریه و زاری در نهاد و لرزه بر اندامش افتاد. چندان که ملاتفت کردند آرام نمی گرفت و عیش ملک از او منقص بود. چاره ندارستند. حکیمی درون کشتی بود ملک را گفت اگر فرماندهی من او را به طریقی خاموش گردانم گفت قایت لطف و کرم باشد بفرمود تا غلام را به دریا انداختند باری چند قوت خورد مودش گرفتند و پیش کشتی آوردند به دو دست در سکان کشتی آویخت چون برآمد به گوشه ای بنشست و قرار یافت. ملک را عجب آمد. پرسید در این چه حکمت بود؟ گفت از اول مهنت غرق شدن ناچشیده بود و قدر سلامت کشتی نمیدانست. همچنین قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید. ای سیر تو را نان جوین خوش نخواهد معشوق منستان که به نزدیک تو زشت است. هوران بهشتی را دوزخ بود اعراف. از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. فرق است میان آن یارش در بر تا آن که چشم انتظارش بر در.